حسام طلبه، قومیه، شعبان 643 همینطور ما تمان برده بود، حیرت کردیم. مثل بچه آدم توی اتاق نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم که یک دفعه دیدیم شمس تبریزی از در وارد شد. مانده بودیم چه کار بکنیم؟ از بس چیزهای وحشتناک درباره اش شنیده بودیم به خصوص از استادمان وقتی دیدیم آنطور جلومان سبز شده ناخداگاه ترس برمان داشت اما رفتارهای شمس خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می آمد پس از آنکه یکی یکی به ما سلام داد گفت که آمده کمی با شیخ یاسین گپ بزند. ترسیدم که نکند حادثه اتفاق بیفتد. گفتم شیخ شیخ یاسین دوست ندارد قریبه ها به مجلس درسش بیایند. بهتر است الان بروید و بعدا بیایید با خودش صحبت کنید. شمس گفت ای والله جوان از اینکه هشدار دادی متشکرم اما بعضی وقتها برای حل کردن بعضی مسائل لازم است ای اتفاق بیفتد چی فکرم را خوانده بود راستش قبلا شنیده بودم که شمس میتواند فکر آدمها را بخواند شمس اینطور ادامه داد نگران نباشی صحبتم با استادتان خیلی طول نمیکشد. ارشاد کنارم نشسته بود. خم شد و پشپشکنان در گوشم گفت: مردک پررو را ببین تا مجلس درس استاد آمده، یارو خود شیطان شامی است. سرم را تکان دادم. اما راستش من در وجود شمس حالتی ندیده بودم که به شیطان بماند. تصویری که از خودش در ذهنم درست کرده بود، تصویر مردی درستکار، سریح اللهجه لحجه و جسور بود. فکرم را برای خودم نگه داشتم. چند دقیقه بعد شیخ یاسین از در وارد شد. به نظر غرق فکر می رسید. ابروهایش در هم گره شده بود. هنوز یک قدم بر نداشته بود که همانجا خشکش زد. زده به مهمان ناخوانده نگاه کرد. این مردک نحس اینجا چه کار دارد؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ ما شاگردها به هم دیگر نگاه کردیم. اما قبل آن که بتوانیم جوابی بدهیم، شمس بی پروا وسط صحبت پرید و گفت که داشته از اینجا رد می شده، با خودش گفته سری به مدرسه بزند و مردی را ببیند که در قونیه به این بزرگی بیش از همه از او نفرت دارد. بعضی از طلبه با حالت عصبی سرفه کردم. به ارشاد نگاه کردم او هم نگران بود چنان استرابی در فضا حاکم بود که میشد با دست لمسش کرد شیخ یاسین گفت برایم مهم نیست که چرا اینجا آمده ای کارهای مهمتری از هم کلام شدن با تو دارم یالا برو بیرون می خواهم برگردم سر درس یالا بزن به چاک شمس گفت می بینم نمی رو در رو با من صحبت بکنی اما پشت سرم بلبل زبانی می کنی هیچ کس هم دارد نیست مدام پشت سر من و مولوی و اهل تصوف لیچار می بافی حالا که اینقدر ذهنت را مشغول کرده این لابد سوال هایی داری خب بپرس شیخ یاسین رو ترش کرد گفت من حرفی با تو ندارم هرچه لازم باشد بدانم میدانم شمس به طرف ما برگشت و صدایش را بلند کرد اگر کسی بگوید هرچه لازم باشد بدانم میدانم به او نه به چشم استاد بلکه به چشم جاهل و نادان باید نگاه کرد. فقط نادانها گمان می کنند، همه چیز را میدانند دانند. شیخ یاسین از عصبانیت سرخ شد. سی به آدمش قلومبه بیرون زد. گفت در این صورت بیا از طلبه ها بپرسی. کدام یک از این دو نفر باید بود؟ عارفی که جوابها را میداند یا حیرانی که چیزی جز سؤال ندارد و ذهنش پریشان است همه دوستانم طرف شیخ یاسین را گرفتند اما حس کردم که بیشترشان صادق نیستند و اینجوری میخواهند دل استاد را به دست بیاورند شمس شانه‌ای تکانداد داد و گفت اینکه گمان کنی همه جوابها را می دانی، نشانه جهل است. اما حالا که در جواب پیدا کردن رو دست نداری، یک سؤال از تو بکنم. آن لحظه بود که نگران ادامه بحث شدم، اما هیچ جور نمیشد به قضیه فیصل داد. شمس پرسید، اینجا و آنجا می نشینی؟ و پشت سر من حرف میزنی. میگویی خدمتکار شیطانم خیلی خوب حالا که اینجور است از خدمتتان خواهش میکنم بفرمایید شیطان چیست شیخ یاسین که فرصت نطق کردن به چنگش افتاده بود گفت البته که میگویم دینمان که آخرین و کاملترین دین ادیان ابراهیمی است میگوید که آدم و حوا به خاطر شیطان از بهشت رانده شدند ما انسان هم که از نسل آدم بشریم همیشه باید مراقب باشیم زیرا شیطان با لباس مبدل میانمان میگردد گاه به لباس قماربازی در میآید که به قمار دعوتمان میکند گاه به حیعت زنی زیبا در میآید تا از راه بدر کند ما را شیطان حتی به صورتهایی در میآید که اصلا انتظارش را نداری مثلا به شکل درویشی آواره هم ممکن است سر راهمان سبز شود شمس طوری که انگار منتظر این توهین بوده لبخند زد. گفت منظورت کاملا معلوم است. اما چه کار راحتی بوده؟ اینکه همیشه در وجود دیگران دنبال شیطان بگردیم به کارمان می آید. مگر نه؟ شیخ یاسین با تردید پرسید منظورت چیست؟ شمس گفت خب اگر شیطان اینقدر که میگویی هیلگر و قویست و همیشه منتظر فرصتی است تا زیر پای من بنشیند دیگر چه نیازیست ما انسانها به خاطر اشتباهاتی که مرتکب میشویم خودمان را مقصر بدانیم میگوییم همه خیر از خداست و همه شر از شیطان ما این وسط چه کار ای؟ اینطوری دیگر دلیلی نمی ماند که از خودمان بازخواست کنیم و اشتباهاتمان را جبران کنیم می بینی چقدر راحت است؟ شمس همان همانطور که حرف میزد توی اتاق شروع کرد به قدم زدن و با هر کلمه تازه صدایش را بلندتر می کرد. ادامه داد اما یک لحظه فرض کنیم جایی بیرون از وجودمان شیطانی هیلهگر و مستقل از ما وجود ندارند. آن ملکهای عذاب هم که توی دیگ آب جوش قلقل میجوشانندمان وجود ندارند. در این صورت روایتهایی که از ترس خون را در رکهایمان منجمد میکنند، ای بسا برای درس دادن به ما باشند. اگر شیطان و جهنم برای نشان دادن حقیقت به ما روایت شده باشند و بعدها ما آن حقیقت را فراموش کرده و به ازبر کردن روایت های قالبی بسنده کرده باشیم در آن صورت چه؟ شیخ یاسین دست هایش را درهم گره کرد. خوب آن حقیقت چه بوده؟ آن حقیقت چه بوده؟ این بوده انسان موجودی چنان پیچیده است که هم بهشت را برای خود می کند هم جهنم را انسان اشرف مخلوقات است از بلند مرتبه بلند مرتبه و از پست پست تر. اگر معنای این را کاملا درک می کردیم، آن وقت نه در بیرون بلکه در درونمان شیطان را می جستیم. چیزی که لازم داریم این است که خودمان را جز به جز وارسی کنیم نه اینکه در دیگران دنبال خطا باشیم. شیخ یاسین با لحنی تمسخرآمیز گفت، تو برو خودت را وارسی کن. انشاالله روزی کفاره گناهانت را میدهی. اما علما باید مواظب جماعت باشند. ما آنطوری نمیتوانیم به کار خودمان برسیم شمس گفت، در این صورت اگر اجازه میدهید، حکایتی تعریف کنم. این حرف را با لحنی چنان آمیز زد که درست نفهمیدیم سر به سر من میگذارد یا اینکه واقعاً اجازه میخواهد. به هر حال این حکایت را تعریف کرد. چهار بازرگان در مسجدی خالی نماز میخواندند. همان موقع مأزین وارد میشود. بازرگان اول نمازش را نیمه کاره رها می کند و فورا میپرسد؟ جناب ما از آن گفتهاند یا هنوز وقت داریم؟ بازرگان دوم نمازش را رها می کند و به دوستش میگوید؟ « ای بابا نمازت را نیمه کاره رها کردی؟ چرا حرف زدی؟ نمازت باطل شد؟ یالا زود باش از اول بخوان ببینم. بازرگان سوم تا این را شنید دخالت کرد و گفت. ای وای احمق چرا او را سرزنش می تو باید نماز خودت را تمام می ببین الان نماز تو هم باطل شد. بازرگان چهارم طاقت نیاورد زیر لب زمزمه کنان گفت این بی ها را ببین هر سه نمازشان را هدر دادند خدایا تو را شکر میگویم که نگذاشتی گول بخورم و مثل آنها نمازم نیمه کاره بماند شمس پس از تعریف کردن این حکایت به شاگردها رو کرد و پرسید خب شما چه فکر میکنید به نظر شما کسی از این چهار بازرگان نمازش باطل شد؟ اگر شد کدامشان؟ توی اتاق درس انگار موجی به افتاد. بعضی شاگردها به فکر فرو رفتند. بعضی دیگر هم دور هم جمع شدند و درباره جواب شروع به بحث کردند. آخر سر یکی از ته اتاق فریاد زد، نماز دومین و سومین و چهارمین بازرگان قبول نمی شود. باید از اول بخاند. فقط تاجر اول است که تقصیری ندارد. چون او فقط خواسته که با معزن مشورت کند. ارشاد طاقت نیاورد. پرید وسط حرف. بله، اما او هم نباید نمازش را نیمه کار میگذاشت. به نظر من بجز چهارمی، بقیه بازرگانها اشتباه کرده بازرگان چهارم فقط با خودش حرف میزد. نگاه هم را دزدیدم هیچ یک از این دو جواب را درست نمیدانستم. اما تصمیم گرفته بودم حرفی نزنم اگر نظرم را می گفتم احتمالا هیچ کس خوشش نمی آمد اما همین که فکرها از ذهنم گذشت شمس تبریزی یک دفعه ایستاد به من اشاره کرد و پرسید خب تو پسر جان تو چه فکر می کنی؟ آب دهانم را قورت دادم گفتم این بازرگانها. اگر تقصیری هم داشته باشند این نیست که نماز را نیمه کار گذاشته اند و حرف زدهاند. گناه اصلیشان این است که به جای آن که بر حقیقت نماز و دعایی که میخواانند متمرکز شوند فکرشان جای دیگری است و حواسشان به اتفاقات برشان. اما اگر الان ما دربارهی آنها قضاوت کنی آن وقت همان خطا را ما هم مرتکب شده. ایم. شیخ یاسین بی حوصله حرفم را قطع کرد. چه میخواهی بگویی؟ میگویم هر چهار بازرگان به دلایل مشابه خاکارن. از طرف دیگر نمیتوانم به هیچ کدامشان بگویم ختااکا؟ چون حکم کردن درباره آنها وظیفه من نیست. من از کجا بدانم نماز کدامشان قبول بوده و نماز کدامشان قبول نبوده؟ من فقط به کار خودم می پردازم. زوب کردن نفسم و پروردن دلم. شمس تبریزی قدمی به طرفم برداشت. چنان با محبت و مهربانی به صورتم نگاه کرد که خودم را مثل کودکی حس کردم که از تشویق پدر و مادرش خوشحال شده. اسمم را پرسید. گفتم: "حسام، سرورم." و در آن هنگام شمس به سایر شاگردها رو کرد و گفت: "دوستتان حسام دل صوفیان دارد." شاید این را هنوز خودش هم نمی داند. اما مایه این ترکی مایه رندان است. این را که شنیدم صورتم داغ شد. با خودم گفتم الان است که شیخ یاسین کلی لیچار بارم کند و همشاگردی دستم بیندازند. اما نگرانی هایم همانطور که آمده بود همانطور هم رفت پشتم را صاف کردم به شمس لبخند زدم او هم لبخند زنان چشمکی به من زد و پرشورتر از قبل حرفش را ادامه داد صوفی میگوید گوید به جای آن که درباره دیگران داوری کنم و حکم بدهم درون خودم را مینگرم. نادان میگوید. همه نقص های دیگران را پیدا میکنم اما فراموش نکنید کسانی که در دیگران دنبال خطا میگردند اکثر اوقات خودشان خطا کارند میگویند وارد جزئیات شوید. آنگاه کل را فراموش میکنند درخت ها جنگل را ببینند. شیخ یاسین حرفش را برید چی؟ جزئیات؟ یادت باشد که علما با توجه به موقعیتشان نمی توانند نسبت به اعمال دیگران بی باشند. مردم در هر مسئله ای از ما فتوا می خواهند. اگر دماغم خون بیاید وضویم باطل می شود روزه را که موقع مسافرت نتوانستم بگیرم، آیا واجب است بعدن بگیرم؟ مگر این مسئله ها را می شود بی جواب گذاشت؟ شافعی یک طور جواب می دهد، هنفی طور دیگر، هنبلی و مالکی هم هر کدام طور دیگر. اگر راهنمایی مردان دین نباشد، جماعت به راه خطا میافتند شمس شانه‌ای تکان داد و گفت عارفان از قرآن حزی دیگر میبرند آنها نیازی به راهنمایی ندارند شیخ یاسین همین که این حرف را شنید چنان عصبانی شد که همان یک چشمش شروع کرد به پریدن گفت راهنمایی ما دل بخواهی نیست حضرت آقا اجباری است شریعت مجموعه احکامی است که هر مسلمانی از گهواره تا گور باید به آن مراجعه کند شمس جواب داد شریعت کشتی است شناور در دریای حقیقت آشقها دیر یا زود کشتی را رها می کنند و در دریا قوتور میشوند شیخ یاسین چشمانش را تنگ کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت تا کوسه نوش جانشان کنند آنکه شیخ ندارد شیخش شیطان است آنکه راهنمایی را نمیپذیرد عاقبت خوشی نخواهد داشت چندتا از شاگردها با خنده شیخ خندیدند، اما بقیه ماتمان برده بود. به پایان ساعت درس نزدیک می شدیم و من احتمال نمی دادم این بحث بی سر و صدا تمام شود. شمس هم بود همین را حس کرده بود که با اندوهی آشکار در صدایش گفت تا امروز با صدها شیخ آشنا شدم، بعضی هایشان انسانهایی به قایت سمیمی و صادق بودند، اما بعضی هایشان تقلبی بودند و ای از اسلام سررشته نداشتند. گرد چارق آشق حقیقی خدا را با این گونه شیخ عوض نمی کنم. این حرفها ها شیخ یاسین را از کوره به در برد. بس از دیگر. مزخرفاتت را به اندازه کافی شنیدی. یالا از مجلس درسم برو بیرون. شمس با حالتی کلافه گفت. نگران نباش. دارم میروم. بعد به طرف ما برگشت. گفت. این مباحثه‌ای که امروز شاهدش بودید در اصل نوعی جدایی فکر و روش است که از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تا امروز ادامه دارد اما این دوگانگی خاص تاریخ اسلام نیست در همه دینهای ابراهیمی هست این قضیه عالم و صوفی عقل و دل دین قاعد مهور و دین عشق مهور است انتخاب با شماست شمس مدتی سکوت کرد انگار منتظر بود سنگینی کلمات را حضم کنی نگاهش را روی خودم حس کردم انگار رازی مشترک داشتی بعد ادامه داد خلاصه نه استادتان بیش از آن که در توانش است بداند و نه من بیش از آن میدانم که در توانم است بدانم شاید هم او کور است هم من کورم مهم این است کور بودن بیننده خلالی به نور خورشید نمیرساند. همینطور مباحثه آدمیان تأثیری بر خدا ندارد شمس تبریزی به محض گفتن این حرف دست راستش را روی قلبش گذاشت و به همگیمان من حتی به شیخ یاسین که در گوشه منفعل ایستاده بود سلام داد بعد در را باز کرد و رفت پشت سرش سکوتی عمیق اتاق را فرا گره. آرنج ارشاد که به پهلویم خورد به خودم آمدم. انگار میخواست سر به سرم بگذارد. گفت چی شده؟ میبینم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته ای. پس تو دل صوفیان داشته‌ای. ای. نیازی ندیدم جوابش را بدهم. سکوت کردم. دیگران را نمیدانم. اما من خوشحالم از اینکه امروز با شمس تبریزی آشنا شدم.